شکاری شو بهی رو وارد کردن که اول باید به خیلی جاتا از صوف است خیلی جاتا از صوف است و که میگن نمازی که هزارات آن را میخوانند نمازی اونها 6 تک در روز عیده نمازی اینها نمازی باطل هست است خرافی هست و اینها بد دارم میکنن این اول فرستا داخل بعضی گروه ها از خود من پرسید که فردایی دست استو حالا چند تکبیر بگیم چون نماز رو من فراموش کردم دروغ پیشه شون هست وقتی میخوان دروغ, دروغ بگن راحت دروغ میگن پیشه اونها دروغ هست اما دروغو حافظه ندارد گفتن آقا اینجوری نه میگه دیشر داخل سهی بخاری به مطالعه کردم در ابن ماجه مطالعه کردم در لسائی مطالع کردم اونجا آمده که دوازده تکبیر استغفر الله چه دروغ بزرگه به نظر من اصلا این بخاری تا زندگیش ندیده باشه چون اصلا صحیح بخاری چه حدیثی نداره اصلا بخاری کیفیت نماز روایت نکرده چند تا تکبیر بگید حضرت ابوهوری همه چیزو کرده دو تا راه داره یک روایت ما داره و یک روایت وارد ہونا داره پس روایت قابل اعتبار نیست چون که داخلش است اما حدیث ابن مرسود دار استراب خیلی زیاد داخلی مورد حدیث زیادی آوردن که خود ابن عبی شعبه باستاند استحی روایت کرده خود بیحقی باستان استحی روایت کرده اون چیزی احمد درمیگه استحاوه کرام پس این اشکالاتو گرفتن که نماز حضرت احناب والا کسی مشکال داشته باشه حالا چار پانچ تصفیه است و همین نمیشه خواهن چونکه اینجا محلش نیست تمام اشکال وارد شده رو جواب دادیان و قائل راضیه گفتن چون در ما همین کار هست، چون که بدون اشکال آمده اونها با اشکال هست وقتی با اشکال باشه بدون اشکال ما میگیم این ما خلاف رفتی ایراد میگیرن خوب جمهور رفتون قائله که شما چرا خلاف جمهور میروی ما میگیم جمهور کجا تمام امام میگه ستالاس ستالش چرا ایکی ای بیکوری شما داری خلاف کل عالم هرکز بیکنید این چیزها رو انجا مطرح کردن در فضاهای مجازی شبهات و یراز کردن خیلی زیاد حل اشکاله او زورتریش که برای اونا امین است که وات حدیث تحیل نیست میرستی عمل صحابه اونا عمل صحابه رو زیاد حجه نمی دونن اگر حجه می دونستن به حضرت عمر بن خطاب اعتراض نمی که در مورد بازی از کارهایشت یک چیز جالب تا این است که ابراهیم نخایی رحمه الله از کبار تابعین می‌فرماید در زمان حضرت عمر بن خطابه رضی الله تعالی بر چهار تکویرات اجماع شده زمان حضرت عمر کل اصحاب کر همین چیزو عملی انجام دادن چهار تکبی بیشتر هم نمی بفتند حالا این اقوال مختلف در موری وجود داره ببخشید اگر به هر حال هدف نه که رنج خاطرات نازوک شما هدف شده نه هدف شده که این چیز هیلیت روو بکنی شور در خود فضا مجازی و تلگرام و واسطی که خبر کوته نه بو و این که وشتیم نکردیمه اما اری کریں رو پذ نارنتھا پریکشا بیتی شو ای چیزا نہ که چون اگر ما به انتقال شو بکنی انتقال شد یتر کوته بکنی و خیلی شدید انتقاد کوته نکنی و نپیت بازار داغ بکنی حالا که خیلی وقت مض از دی بازار دیگه پکت استعفا بده اما نهیلن تا که ما اراده کی استعفا بده کی اختلا جنی ماشاءالله کی با تیر حوا چیزا ما روزی رسانه کی محلی استعفا و هداف هدفش نیست که اختلاف نیست، هداف اینه که بیست صورت است نیست. آقای کسی یک دوازده نباید ضایب بوده. شاید قطعا که قطع اختلاف نیست چرا؟ چون در شش تکبرها قطعا از اما دوازده محلش چرا؟ چون آیا شش چجور بوده؟ بالاتر چجور دوازده سیزده در نه دو دوازده سیزده شش اما در نیست. پس ای ای ای دا این تشرش تکمیل قطعا ثابتین اما که هشت گوبتا، نه گوبتا، دوازده گوبتا، سیزده گوبتا، این محل اختلاف. بعضی گوی ها بعضی بودی. آر مشکلش، مشکل نیست داره. که تمام رواحاتی بثابت شش دانه لذت پس شدیدی این که مهل نیست. لذا خیلی خود نماز سنتی واجبی می‌دانند. اما تکمیلها و نماز فرق نمی‌کنه. تو و خرافاتی. والا علا جالب شیماده قویتر چونه بدلاله قویتر ثابتیم چون چیمه محل اشکال حق و انصافو بشاری حق و انصاف وا بدون استفسبیږی شوړه ومذہبهنه بی صورت در خود مذہبهنه چند چند نوع مشتری بهره مشتری مطلق ها مشتری فالمذہبه مشتری فالمذاهب ها ای کل موشتهدی کار رو احادیث و اقو راجی استنباطی را. چونی که اسم کورکوران حتا وا چیز زوری اگر بی صورت بیوتن چرا خطا بر قول ما بیوسفین چرا خطا بر قول ما محمدین چرا قول ما ابولی فکری چرا حسن ابن زیادی گرین چرا فا دیگه گرین پس اینکه خودشی منظور ما رواات درست پیغمبر بدون از اختلاف کجا استرس 33 ما زوری گابشین و گابشین کی بیا كده اطماع احادیث زیر فهم نادین اگر حدیث مخالف بیوتن قطعا اولی کس ویلک ما ویلک ما خلاف پیغمبر درستین پس وقت هدیه درسته روستی پیویلی که نی؟ کودت ایرادی که